عزیزان به کلاس دیگری از دانشکده کوچک کتاب مقده از خوش اومدیم. این کلاس بخشی از مطالعه مقدماتی کتاب های عهد جدید هست و ما هر بار یک کتاب را بررسی می ما چند جلسه هست که به بررسی کتاب اعمال پرداختیم و زندگی و خدمات پولس رسول رو بررسی کردیم. زندگی و شهادت او یکی از دلایل محکم انجیل ایسای مسیح هست. اگه خدا میتونه شخصی مثل پولوس رو نجات بده، پس میتونه همه رو نجات بده. امروز در دنبالی بررسی کتاب اعمال، مطالب بیشتری از زندگی و خدمت پولس یاد خواهیم گرفت و با هم به معلممون در این باره گوش میکنیم. یکی از چیزایی که میخوام در موقع خوندن کتاب اعمال رسولان به اشتوجه کنید، نه به کار افرادی که در این کتاب ذکر شدن. براین که نحوه کار قوم خدا چیزی که تمامی دنیا نمیتونه انکارش کنه. یکی از کارهایی که در کتاب عمل میبینی معزه هست. پتروس از واعزینی بود که در اواهله کتاب معزه های او رو بینیم. بعدش به یک معزه عالی از استیفان نگاه میکنیم. وقتی که به اواست کتاب عمل میرسیم در باب 21 معزه ها به طور عمده از پولس رسول هستند. پولس رسول توسط جمعیت بزرگی از مردم مورد حمله قرار میگیرد. در واقع اونها داشتن پولوس رو به قصد کشت می زدن تا اینکه افسر رومی با چند تا سرباز میان که پولوس را از اون جمعیت نجات بدن. همونطور که داشتن پولوس رو به سمت قلعه می بردن، جایی که قرار بود زندانیش کنن، پولوس به اون فرمانده التماس می کنه که بهش اجازه بدن که موعظه بکنه. چون که می‌دید که فرصت عالیه. وقتی مبشر یا خادمی جمعیت عظیمی رو میبینه یه همچین احساسی بهش دست میده. عجب فرصت خوبی برای موعظه انجیله. از همون طور که سربازان دارن پولوس رو پایین میارن، پولوس با افسر رومی صحبت میکنه، در واقع اونا داشتن پولوس رو روی دستشون حمل میکردن تا از جمعیتی که کتکش میزدن محفوظ بمونه. پولوس به فرمانده میگه: لطفا منو پایین بذارید و اجازه بدید موعظه کنم." و بالاخره در آخر باب 21 سربازا اونو پایین میذارن و او شروع میکنه به موعظه کردن به زبان ابری. او موعظه ای عالی انجام میده که در باب 22 ثبت شده. میبینین که این یکی شبیه موعظه در تپه مریخ نیست. پولس از شعرها و از فلاسفه نقل قول نمیکنه یا از کلمات حکیمانه و فریبنده انسانها استفاده نمیکنه. اگه به زبون ساده بگیم او فقط شهادت خودش رو میگه و داستان خدای خودش رو میگه. او در مورد تجربه خودش تجربه شخصی خودش با عیسی مسیح میگه. همونطور که پولس داستان تبدیل خودش رو در جاده دمشق با اونها در میان میذاره، به ما میگه که تنها راهی که میتونیم او زندگیش و خدمتش رو درک کنیم از طریق کلمه تجربه هست. پولس داره به این جمعیت عظیم در مورد تجربه‌ای که در جاده دمشق داشته میگه در اعمال 22 آیه 22 میخونیم مردم تا اینجا به پولس خوب گوش میدادن اما وقتی کلمه غیر یهودیان را به زبان آورد طاقت نیاوردن و باز فریاد زدن چنین شخصی باید نابود شود اعدامش کنید لایق نیسنده بماند مردم پشت سر هم فریاد می زدن و لباس خود را در هوا تکان میدادند و گرد و خاک بلند میکردن. حالا من سالهاست که معزه کردم اما هیچ وقت همچین تجربه ای نداشتم که مردم در پاسخ به معزه من لباس رو پاره کنند آشغال به هوا پرت کنند و آرزو کنند که کاشمن مرده بودن. اما اون جمعیت اینطوری نسبت به معزه پولس رسول واکنش نشون دادن اون موقع بود که اون افسر که بهش اجازه داده بود می که خشم جمعیت داره دوباره بالا میره برای امنیت او پولوس رو به داخل قلعه میبره. اون موقع بود که اون افسر رومی که بهش اجازه مععظه داده بود میبینه که خشم جمعیت داره دوباره بالا میره و برای امنیت و او پولوس رو به داخل قلعه میبره. رومیان وقتی اغلب کسی رو دستگیر میکردن برای جلب توجهشون اون شخص رو به یک تیر میبستن و با تازیانه او رو میزدند اونها معمولا برای شروع 39 ضرب شلاق به اون شخص می زدن. اونها پیش خودشون فکر می‌کردن که با این کار توجه اون شخص رو موقع سوال کردن به خودشون جلب می‌کنن. درست وقتی که میخوان پولوس رو به تیر زنجیر بکنند، پولوس به سربازی که زنجیرش میکنه میگه: آیا این قانونیه که یک شخص رومی رو که محکوم نشده بزنید؟ این سرباز می‌پرسه: مگر تو رومی هستی؟ پولوس میگه: من یک رومی هستم. سرباز پیش فرمانده میره و میگه بهتر مراقب کاری که با اون مرد میکنی باشی اون رومیه بنابراین فرمانده پیش پولوس میره و میپرسه آیا تو رومی هستی پولوس گفت بله هستم فرمانده میگه من برای به دست آوردن تابعیت رومی به های زیادی پرداختم پولوس میگه من با تابعیت رومی به دنیا اومدم من نمیتونم سر در بیارم اما تعجب میکنم پولوس که اینجا میتونه مانع کتک خوردن خودش بشه چرا این کار رو در فیلیپی نمیکنه؟ آیا زمانی رو که او رو در فیلیپی کتک میزدند به یاد داری؟ چرا اون موقع بهشون نگفت نمیتونید منو بزنید من رومی هستم شما هنوز منو محاکمه نکردید قطعاً میتونست با قدرت و نفوز بر اون رؤسای دادرسی در فیلیپی شهر رو کنفیکون کنه اگرچه اینجا در فصل 22 بعد از اینکه تصمیم گرفتن که اونو نزنن زندانیش کردند روز بعد تصمیم میگیرند که محاکمه ای ترتیب بدن افراد مذهبی که در اون جمعیت بودند و پولس رو آزار داده بودند دعوت شده بودند که شکایت خودشون رو علیه پولس در دادگاه مطرح کنند ثبت محاکمه دادگاه از باب 23 شروع میشه این اولین سری از محاکمه های دادگاهی پولس رسوله روشی که این محاکمه شروع میشه رو خیلی دوست دارم ما در اعمال 23 آیه یک این طور پولس در حالی که شورا خیره شده بود گفت ای برادران من همیشه نزد خدا با وجدانی پاک زندگی کردم بلافاصله لافاسله هنانی کاهن اعظم دستور داد اشخاصی که نزدیک پولس بودند به دهان او بزنند پولس به هنانیا گفت ای خوشظاهر بدباتن، خدا تو را خواهد زد تو چه نوع قاضی هستی که برخلاف قانون دستور میدهی که مرا بزنند کسانی که نزدیک پولس ایستاده بودند به او گفتند آیا با کاهن اعظم خدا این طور حرف میزنی؟ پولس جواب داد برادران من نمیدانستم که او کاهن اعظم است چون کتاب آسمانی می‌فرماید به سران قوم خود بد نگو زمانی که پولس اون تودهنی رو می‌خوره طبیعت انسانیش ظاهر میشه برای اینکه این انتظار رو نداشت. حالا پولس خیلی خوب نمی‌دید احتمالاً چشمان پولس بسته بوده و نمی‌دید ما اینو از نامه‌های او می‌فهمیم احتمالاً کاهن اعظم ردای سفیدی پوشیده بود و یک ریشه بلند سفید داشته و تمام چیزی که پولس میتونسته در اونجا ببینه یک چیز محو سفید بوده برای همینه که پولس به او گفته یه روزی خدا به خاطر اون تو رو خواهد زد تو ای دیوار سفید شده آیا مرا مطابق شریعت محاکمه میکنی؟ تو از این مردم میخوای که برخلاف قانون تو دهن من بزنن بعدش سربازانی که اون کنار ایستاده بودن بهش میگن به کاهن اعظم خدا ناسزا میگی این طرز صحبت با یک کاهن اعظمه؟ بعدش پولس میگه حالا کمی خون سردتره ای برادران نمی‌دونستم که او کاهن اعظم است برای اینکه نوشته شده پیشوای قوم خود را بد مگو به عبارت دیگه او داره میگه خب رفقا من خوب نمیبینم تشخیص ندادم که اون کاهن عظمه میدونم که قرار نیست که با کاهن اعظم اونطوری صحبت کنید اینجا میبینید که پولوس واقعی دوباره خودشو نشون میده اینجا جاییه که دقیقا پولوس رو میشناسید اون اطراف محكمه رو نگاه میکنه و به خوبی میتونه ببینه و بگه که نصف این افراد در محكمه فریسی هستند که معنیش اینه که اونها معتقد به عقاید کوخان یهودی هستند. اونها سازمان یافته بودند تا ایمان یهودی ارتودکسیشون رو حفظ کنن. نصف دیگر افراد محکمه صدوقیان بودند. یادتون باشه که فریسیان یهودیان ارتدکسی بودند و صدوقیان یهودیان لیبرال بودند. صدوقیان به رستاخیز یا ماورا طبیع اعتقاد نداشتند. همونطور که قبلا گفتم، به اون دلیل بود که اونها ناراحت بودند. ببینید برای اینکه اونها به خدای واقعی، خدای ماوراءطبیعه اعتقاد نداشتند. پس پولوس به اتاق محكمه نگاه میکنه و میبینه که حتی ممکنه که بین صدوقیان لیبرال و این فریسیان معتقد به اصول کهن تفریقه بیفته او بلند میشه و یک جمله عالی دیگه اظهار میکنه کتاب مقدس میگه آنگاه پولس فکری به خاطرش رسید چون یک دسته از اعضای شورا صدوقی بودند و یک دسته فریسی پس با صدای بلند گفت ای برادران من فریسی هستم تمام اجدادم نیز فریسی بودند و امروز به این دلیل اینجا محاکمه می شوم که به قیامت مردگان اعتقاد دارند. این سخن در میان اعضای شورا جدایی انداخت و فریسیان به مخالفت با صدوقیان برخاستند زیرا صدوقیان معتقد بودند که زندگی بعد از مرگ و فرشته و روح وجود ندارند در صورتی که فریسی ها به تمام اینها اعتقاد داشتند به این ترتیب جنجالی بپاشد شد در این میان عده از سران یهود برخاستند و با اعتراض گفتند ما خطایی در این شخص نمی بینیم شاید در راه روح یا فرشته‌ای با او سخن گفته است. صدای داد و فریاد هر لحظه بلندتر میشد و پولوس مثل کشتی در میان آن طوفان گیر کرده بود و هر کس او را به یک طرف می‌کشید تا اینکه فرمانده از ترس اینکه مبادا پولوس را تکه تکه کنند به سربازان دستور داد او را از چنگ مردم بیرون بکشند و به داخل برج باز گردانند. می‌بینید پولوس به اون اتاق محاکمه نگاه کرد و فهمید که وقتی اونها تو دهنش زدند که خیلی ماهرانه بود که داشتن مجبورش می که تن به محاکمه ساختگی بده و اصلا قرار نبود که در اینجا محاکمه عادلانه ای اتفاق بیفته او دید که نصف اونها فریسی بودند و نصف دیگه صدوقی پس تصمیم می که دادگاه رو به نفع خودش برگردونه او شروع کرد به ایجاد بلوا و گفت من یک فریسی هستم پسر یک فریسی تنها دلیلی که من محکوم میشم اینه که درست مثل هر فریسی خوبی به رستاخیز مردگان معتقدم او باعث شد یک دعوای بزرگی بین فریسی ها و صدوقی ها وجود میاد دعوای اونها تبدیل به یک جنگ کوچک بر سر این یهودی ریز نقش شد که تقریبا داشتن اونو تیکه تیک تیکه میکردند سربازا دوباره مجبور شدن او رو به داخل ببرند و او را از دست فریسی ها و صدوقی های خشمگین نجات ببند. چهل نفر از این یهودی ها با هم جمع میشن و عهد میکنند که تا وقتی که پولس نمرده نه چیزی بخورن و نه چیزی بنوشن آیا تا حالا چهل نفر از شما اونقدر متنفر بودند که به خاطر شما عهد ببندند که تا وقتی شما نمردین نه چیزی بخورن و نه چیزی بنوشند من به اونها چهل یهودی گرسنه لقب دادم برای اینکه هیچ وقت پولس رو به چنگ نیاوردند اگر بر سر اون عهدشون مونده باشن حتما از گرسنگی تلف شدن اونها از فرمانده میخوان که پولس رو برای سوالهای بیشتر پایین بیاره نقششون این بود که وقتی پولوس رو برای طرح سوالهای بیشتر پایین می آوردن بهش حمله کنند و او را بکشند پولوس یک خواهر داره و خواهرش یک پسر داره این خواهرزاده پولس پولوس هست که از فاصله دور میشنوه که این چهل یهودی دارن نقشه میکشن پس به زندان میاد و پولوس رو ملاقات میکنه و بهش در این مورد میگه که اونها قصد کشتن تو رو دارند و بر علیه تو توطعه کردند پولوس به سربازا میگه این مرد جوان را نزد فرمانده ببر زیرا خبری برای او دارد پسر به سراغ فرمانده میره و به فرمانده میگه که این چهل یهودی گرسنه میخوان کاری بکنن که اونها پولوس رو برای سوالات بیشتر پایین ببرن این فرمانده تصمیمی میگیره و تصمیمش این بود که از دست این یهودی کوچولو خلاص بشه او نمیدونست که پولوس چی کار کرده یا چه چیزی قرار اتفاق بیفته اما میدونست که این یهودی منبع دردسر هست و بنابراین ما میخونیم که او دو تا از افسران رو صدا میکنه و میگه دیویز سرباز پیاده و هفتاد سوار نظام دیویز نیزدار آماده کنید تا در ساعت سوم از شب به قیصریه بروند. پس برای پولوس نیز مرکبی فراهم کنید و او را صحیح و سالم به فیلیکس والی در قیصریه تحویل دهید. آیا این جالب نیست؟ این یهودی که خوب هم نمیبینه که از لحاظ فیزیکی هم جذاب نبوده و به نظر میاد وقتی خدا بدنشو میساخته مواد کم آورده بعد از تمامی کتک زدنها و چماق زدن ها و سنگسار ها حالا توسط 470 سرباز رومی احاطه شده بود سعی کنید که 200 سرباز پیاده 70 سوار نظام و 200 نیزه دار را مجسم کنید اونها 470 سرباز رومی هستند که درست وسطشون این یهودی کوچولو روی یک اسب سوار شده و در ساعت 3 صبح او را مخفیانه از در پشتی قلعه بیرون میبرند او رو به ساحل مدیترانه بردن تا از اورشلیم به قیصریه که در فلسطین بود ببرن نمیدونم تا حالا به سرزمین مقدس رفتید یا نه کشیشی رو میشناختم که با رفتن به اونجا مخالف بود او حتی کسانی رو که از اونجا به خونهشون برمیگشتند و این سرود رو میخونند که امروز جایی قدم زدم که مسیح قدم زده بود مسخره میکرد تفکر او این بود که مسیح توی قلب منه اون نمیتونه به من نزدیکتر از این بشه رفتن به اونجا مسیح رو به من نزدیکتر نمیکنه اگرچه در یکی از کلاس‌های کتاب مقدس خانگی که در آنجا درس می‌داد ازش خواستند که اگه می‌تونه اونها رو به سرزمین مقدس ببره از اونجایی که خیلی از اونها تو ایمان بودن او فکر کرد که سفر به سرزمین مقدس می‌تونه مثل یک خلوتگاه روحانی باشه و برای اون فرصت خوبیه که اونها رو شبانی کنه پس موافقت کرد که با هم دیگه به سرزمین مقدس برن بهشون گفت که این سفر براش مثل یک تعطیلیه و نمی‌خواد بهشون درسی بده بهشون گفت که ازش هیچ سوالی نپرسن چون که اونجا راهنماهایی برای این کار خواهند داشت و او به هر حال هیچی در مورد اونجا نمیدونست. وقتی که گروه سرزمین مقدس رسید اولین چیزی که دیدن قلعه رومی ها در قیصریه فلسطین بود اون طوری بازسازی شده بود که دقیقا مثل زمانی باشه که پولس را از اورشلیم به اونجا برد همونطور که گروه در امتداد ساحل مدیترانه از اورشلیم به سمت قیصریه در فلسطین میرفت کشیش چیکار دیگه ای جز کردن به این صحنه نمیکرد. شاید یک شب محتابی بوده زمانی که در ساعت سه نصف شب، اون 470 سرباز رومی با اون یهودی کوچک ریز نقش سوار بر اسبش در وسط اونها در امتداد همین ساحل از اورشلیم به قیصریه در فلسطین میرفتند. اینجا بود که نظرش رو عوض کرد. میکروفونو برداشت و به همه مسافران اتوبوس گفت امشب وقتی به هتل رسیدیم مطالعهی کتاب مقدس خواهیم داشت. دیگه صبرش تمام شده بود و دوست داشت هر زودتر در مورد اون فصل از کتاب اعمال رسولان باهاشون صحبت کنه. در کل اون مدتی که در سرزمین مقدس بودند هر شب وقتی به هتل برمیگشتند یک بررسی کتاب مقدس داشتند. وقتی که پولس به قیصریه فلسطین رسید تسلیم فرماندار شد. فیلیکس از یهودیان خواست که بیان و رسما پولس رو به خاطر گناهانش متهم کنن. اونها اومدن و اینجا دوباره پیغامی عالی از پولس رسول رو میبینیم. در این موقعیت پولس در حضور فرماندار و محکمه‌اش موعظه کرد. پولس دوباره داستان خداوند خودش رو میگه و در آخر فیلیکس رأی میده که هیچ دلیلی برای مجرم دونستن او وجود نداره. به هر حال تصمیم میگیره که پولس رو همونجا نگه داره و از او به خوبی مراقبت کنه. پولس تا زمانی که فیلیکس تصمیم بگیره که با این زندانی کوچولوی غیر عادی چی کار بکنه، تحت بازداشت ملایمه مخانگی قرار میگیره. شما رو به خوندن این بابهای کتاب اعمال رسولان تشویق می کنم. زمانی که دانشجوی سال اول کالج بودم، برای اولین بار این بابها رو خوندم. وقتی اون کارو کردم، عاشق پولوس رسول شدم و عاشق پولوس رسول و عاشق کلام خدا شدم. با شروع باب 21 و خوندن تا آخر کتاب اعمال رسولان با نویسنده دوست داشتنی نصف عهد عتیق آشنا شدم دعا می کنم زمانی که شما همین کار را انجام میدید درست همونطوری که من سالها پیش کردم شما هم عاشق این کتاب مقدس بشید و نتونید عهد جدید رو برای یک لحظه هم کنار بذارید مایلم که شما رو با کلام خدا یکی بکنم یعنی کلام خدا در شما ساکن بشه و شما در کلام خدا برای اینکه زمانی که این اتفاق بیفته خدا معجزاتی رو ترتیب میده و زندگی‌ها تبدیل میشن. افراد شفا پیدا می‌کنن و نجات ابدی رو می‌گیرن. پولوس شخص جالبی برای ملاقات بوده. فرمانده فیلیکس و همسرش دروسیلا به سادگی از طریق شنیدن پیغامی که اون برای دفاع از خودش در محکم داده بود، شیفته او شده بودند. اونها به حدی تحت تاثیر قرار گرفتند که از پولوس خواستن براشون در یک جلسه خصوصی صحبت کنه. بعد می خونیم که پولوس برای انجام این کار خیلی خوشحال بوده در قسمت آخر باب 24 فیلیکس و همسرش به دنبال پولوس میفرستند و چون او درباره ادالت و پرهیزکاری و داوری آینده معزه می کرد فیلیکس ترسان گشته جواب داد که الحال برو چون فرصت کنم تو را باز خواهم خواند به عبارت دیگه وقتی پولوس معزه می کرد او تحت محکومیت روح القدس قرار گرفته بود او تحت الزام روح القدس قرار گرفته بود وقتی که فیلیکس پولوس رو مرخص می کرد، بهش گفت وقتی که برای شنیدن بیشتر درباره موعظه پولوس آماده بشه دنبالش خواهد فرستاد. اگرچه هیچ وقت این اتفاق نیفتاد. بعد میخونیم که فرماندار فیلیکس می‌میره و بعد از دو سال فرماندار دیگه ای به نام فستوس جاشو می‌گیره. معنیش اینه که پولوس حداقل به مدت دو سال کامل در زندان قیصریه بوده. حالا یه دقیقه به این فکر کنین. اینجا یک مرد کوچه که ریز نقش پر انرژی داریم او قلبی برای خدمت داره او بار تمام دنیا رو تو قلبش داره میخواد بره بیرون و خودش رو به تمام نقاط جهان برسونه اینجا مردی رو با یک مأموریتی داریم که همیشه در حال حرکته اما دو ساله که تو زندان گیر افتاده فکر میکنین در طول این دو سال در مورد چه چیزی فکر میکرده فکر میکنین که او فکر میکرده که خدا رهاش کرده و فراموشش کرده و اجازه داده که تو زندان دو سال بپوسه وقتی که با پولوس رسول آشنا میشید خواهید فهمید که او به خاطر مصالحی در زندان بوده یک مفسر قدیمی گفته که زمانی که پولوس به سفرهای خدمتیش میرفته هیچ وقت در مورد های اون شهر تحقیق نمیکرده او به سادگی این سوالا می کرد که زندانتون چه شکلیه برای اینکه همیشه کارش به زندان ختم میشد پولس خیلی از نامه‌هاش وقتی تو زندان بود نوشت. شاید مهمترین و عظیمترین کاری که این مرد برای پیشبرد کار مسیح کرده بود، نامهاش بود که همونطور که قبلا هم گفتم، نصف عهد جدید رو تشکیل میده. به احتمال زیاد پولس زمانی که در زندان قیصریه در فلسطین بوده، افکاری که در سر داشت، همون چیزهایی بود که بعدا در نامهاش منعکس شده بود. این فرمانده یعنی فستوس خیلی زود بعد از اینکه به قدرت میرسه، می فهمه که یک زندانی مذهبی و سیاسی مشهور اونجا وجود داره فستوس یک محاکمه ای ترتیب میده و در اون محاکمه که در اعمال 25 ثبت شده پولس کاری رو که حق هر طببععه رومی بود میکنه پولس در آیات ده و یازده باب 25 کتاب اعمال میگه جناب فرماندار میدانم که سالهای سال است که شما در مقام قضاوت به مسائل یهود رسیدگی میکنید این امر به من قوت قلب می دهد. تا آزادانه از خود دفاع کنم. شما خیلی سریع میتونید تحقیق کنید و پی ببرید که من فقط دوازده روز پیش وارد اورشلیم شدم تا در خانه خدا عبادت کنم. آنگاه معلوم خواهد شد که من هرگز نه در خانه خدا آشوب به راه ام و نه در کنیسه و نه در شهر. و پولس بالاخره میگه من امروز در محکمه قیصر استادم که در آنجا باید محاکمه شوم. من از قیصر دادخواهی میکنم. هر تبهه رومی اون حق رو داشت پولوس فهمیده بود که هیچ ادالتی براش توی دادگاه‌های اورشلیم وجود نداره بنابراین گفت از قیصر دادخواهی میکنم. و فرمانده وقتی فهمید که او از قیصر دادخواهی کرده مجبور شد که پولوس رو به روم بفرسته وقتی که پولوس منتظر انتقالش به روم بوده یک پادشاه و ملکه‌اش به دیدن فرمانده فستوس میاد اسم پادشاه آگریپاس هست اسم ملکه او برنیکیه همونطور که اونها در حال ملاقات بودن، فستوس میگه من اینجا توی قلعه جالبترین زندانی دنیا رو دارم فستوس همه چیز رو درباره پولوس به آگریپاس میگه ظاهرا آگریپاس و برنیکی قبلا در مورد او شنیده بودند اون موقع پولوس واقعا یک همچین شهرتی داشت آگریپاس میگه فکر میکنم باید او رو ببینم یادتون باشه که وقتی خداوند با هنونیا در مورد نقشهش برای این مرد یعنی پولوس گفته بود او گفت او نام من را نزد پادشاهان خواهد برد قوه نبوت در باب 25 کتاب اعمال رسولان تحقق پیدا میکنه. پولس به حضور این پادشاه آگریپاس و ملکه‌اش برنیکی آورده شد. بعدش شانس صحبت کردن به پولس داده میشه. در کتاب اعمال باب 26 یکی از عالی ترین سخنرانی ها یا موعظه های پولس رو بینیم. در اوایل باب 26 میخونیم آگریپاس به پولس میگه اجازه داری ماجرا رو بازگو کنی. آنگاه پولس دست خود را دراز کرده به دفاع از خود پرداخت. در ابتدای آیه 2 باب 26 پیغام عالی از پولس رسول رو می‌بینیم. محتوای پیغام چیه؟ دوباره همون داستان تکراری خداوند در راه دمشق بوده. او به اونها میگه میخواستم این مسیحیان رو به زندان بندازم و بعد اونها رو بکشم. در وسط روز نور عظیمی از آسمان منو به زمین انداخت و این صدا رو شنیدم که میگفت: شاول، شاول چرا مرا آزار می‌دهی؟ من بهش گفتم خداوند تو کی هستی؟ او گفت من مسیح هستم پولس این داستان رو که چطور با مسیح قیام کرده در جاده دمشق ملاقات میکنه مطرح میکنه پولس با گفتن داستان تبدیل خودش و ایمان آوردنش به مسیح ادامه میده همونطور که پولس به نتیجه گیری این موعظه عالی میرسه ظاهرا حرفهای او بر فرمانده اثر میذاره اگر من و شما هم میتونستیم موعظه های پولس رو بشنویم ما هم با چیزی که میشنیدیم تحت تاثیر قرار گرفتیم. فرمانده فریاد زد و گفت دانش بسیار تو را دیوانه کرده پولوس. جالبه که بدونین اونها مسیح رو هم به همین چیز متهم کرده بودند. اونها مسیح، انبیا و پولس رسول رو با همون چیز مشابه متهم کرده بودند. فستوس بهش گفت، پولس تو عقل خودت رو از دست دادی، دانش زیاد تو رو دیوانه کرده. این عبارت عقل خودت رو از دست دادی عبارت خیلی جالبیه. در یونانی معنی واقعی شینه. تو خارج از مرکز هستی. تمام ما مرکزی داریم که زندگی هامون دور اون محور می چرخه و تغییر میکنه. برای بیشتر افراد این مرکز نفس هست. بیشتر افراد وقف خودخواهی های خودشون هستند. مرکزی که زندگی هاشون دورش می چرخه نفسه. تهمت فستوس این بود. پولوس، تو مرکز دیگه ای داری. تو خارج از مرکزی. تو توی مرکز نیستی. آیا چیزی که به زبان یونانی گفت تو مرکز دیگه ای داری؟ که زندگی دورش میچرخه حقیقت داشت پولس خارج از مرکز بود پولس مرکز دیگه ای داشت پولس مرکزی داشت که زندگیش حول اون میچرخید اون مرکز مسیح بود مسیح قیام کرده کسی که باهاش توی جاده دمشق ملاقات کرده بود قطعاً اون مرکز زندگی مسیح بود فستوس با چیزهایی که می‌شنوه تحت تاثیر قرار می‌گیره بعدش پولس به سمت پادشاه آگریپاس برمیگرده، آگریپاس یک یهودی بود و پولس درک میکنه که آگریپاس از چیزهایی که شنیده تحت تأثیر قرار گرفته. پس پولس میگه، ای آگریپاس پادشاه، آیا به پیامبران اعتقاد دارید؟ میدانم که دارید. او با اشاره به پادشاه میگه، پادشاه خود از این امور آگاهند و من نیز بی پرده با ایشان سخن میگویم زیرا یقین دارم هیچ یک از اینها از نظرشان دور نمانده است. چون چیزی نبوده که در خلوت روی داده باشد ای آگریپاس پادشاه آیا به پیامبران اعتقاد دارید میدانم که دارید و بعد میخونیم که آگریپاس به پولس میگه به همین زودی می خواهی مرا مسیحی کنی محققین با معانی این آیات موافق نیستند بعضی هاشون میگن آگریپاس واقعا داشته با کنایه حرف میزده داری تلاش میکنی که چیکار کنی پولس میخوای منو مسیحی کنی خدای من. پولوس، تو داشتی کاملا منو متقاعد میکردی که مسیحی بشم. اونها بر این باور نیستند که اون داشته بیریا صحبت میکرده. رو کپوس کنده بگم. من با این محققین موافق نیستم. من معتقدم که آگریپاس بیریا بود. پاسخ پولوس به آگریپاس هم قطعا خالصانه بوده و پولوس بهش گفت از خدا میخواهم که دیر یا زود نه تنها شما بلکه همه کسانی که امروز به من گوش همانند من گردند. البته نه در زنجیر آگریپاس میگه به همین زودی میخواهی منو مسیحی کنی و پولس زنجیرها رو بالا میاره و میگه آگریپاس آرزو میکنم که تمام انسانها نه فقط بخشیشون بلکه همه با هم مثل من بشن البته نه در زنجیر علت دیگهی که من فکر میکنم آگریپاس بیریا صحبت میکرده این سخن آخر کوچک در اینجا هست ما اینجا میخونیم زمانی که پولوس این چیزها را برخاست. و فرمانده و برنیکی همچنین بقیه کسانی که با آنها نشسته بودند برخواستن و گفتگو بیرون رفته به یک دیگر میگفتن این مرد کاری که سزاوار مرگ یا زندان باشد نکرده سپس آگریپاس به فستوس گفت اگر این مرد از قیصر دادخواهی نکرده بود میشد او را همکنون آزاد کرد چون که از قیصر دادخواهی کرده بود باید به روم میرفت پولس به او شلیم رفت چون روح القدس بهش گفته بود روح بره پولس به مشایخ افیسوسیان گفته بود، من از طریق روح ملزم شدم که به او شلیم برم. روح القدس به خاطر خدمت بزرگی که در اورشلیم شلیم داشت پولوس رو به اونجا هدایت کرد. حتی با اینکه او به خاطر این خدمت رنج زیادی کشید و هزینه گذافی پرداخت. روح القدس در تمام مدت در قرنتوس با او بود تا هیچ کس به او دست رازی نکنه. روح القدس این شهادت رو زمانی که پولوس در بود قر زمانی که پولس اون الهام الهی رو در قرنتوس داشت خدا چیزی در مورد کردن انجیل بهش نشون داد خدا گفت پولس فقط پیغام انجیل رو اعلام کن اون وقت خواهی فهمید که قوم من کی هستند برای اینکه افراد زیادی در این شهر دارد خدا به پولس در قرنتوس گفت که او هم در روم شهادتی خواهد بود معنیش این بود که او باید به روم میرفت دلیل دادخواهی پولس از قیصر این نبود که عدالت رو در اون روز در دادگاه اجرا کنه در متن‌های مربوط به زندگی پولس این واقعیت را رو که روح القدس حقیقتی را در قلب پولس گذاشته بود که او میخواست به روم بره کشف میکنید. پولس از قیصر دادخواهی کرد برای اینکه میخواست هزینه سفرش به روم توسط دولت روم پرداخت بشه. پولس به عنوان مهمان دولت روم به روم رفت. در باب 27 اعمال رسولان داستان ثبت شده از سفر پولس به روم رو میبینید. این باب خیلی جالبه. پولوس سوار کشتی میشه که آماده ی حرکت به سمت رومه یک بحث اصلی بر سر رفتن به خاطر شرایط آب هوایی در گرفته بود. پولوس برای گفتن این جملات به سربازان رومی که اونو به روم می بردن تردید نکرد. سروران میتوانم ببینم که سفری پر خطر خواهیم داشت و ضرر بسیار نه تنها به کشتی و بار آن بلکه به جان ما نیز وارد خواهد آمد. او داره سعی میکنه که به اونها بگه شما الان نباید به سفر دریایی بری. البته اونها، به حرف او گوش ندادن برای اینکه رومی بودند و او زندانی بنابراین اونها سفر رو شروع میکنن و همونطور که پولوس گفته بود گرفتار طوفان وحشتناکی میشن بعد میخونیم که اونها توی مخمس وحشتناکی گیر افتاده بودند و مجبور بودند که بار کشتی رو به دریا بریزن در روز سوم او میگه با دستهای خودمان لوازم کشتی رو به دریا ریختیم روزها همچنان میگذشت و ما رنگ خورشید و ستارگان را نمیدیدیم و طوفان نیز فروکش نمی کرد آنگونه که همگی امید نجات را از کف داده بودی اما پس از مدت ها بی غذایی پولوس در میان ایشان ایستاد و گفت سروران شما می میبایست سخن مرا میپذیرفتید و کرت را ترک نمی کردید تا این همه آسیب و زیان نبینید بعدش میگه و اکنون نیز از شما خواهش میکنم که شهامتتان را از دست ندهید زیرا آسیبی به جان هیچ از شما نخواهد رسید فقط کشتی از دست خواهد رفت زیرا دیشب فرشته خدایی که از آن اوییم و خدمتش میکنم در کنارم ایستاد و گفت پولس مترس تو باید برای محاکمه در برابر قیصر حاضر شوی و به یقین خدا جان تمام مسافرانت را نیز به تو بخشیده است پس ای مردان دل قوی دارید زیرا به خدا ایمان دارم که همان گونه که به من گفته است خواهد شد هیچ کس زندگیش را از دست نخواهد داد کشتی ایمان از دست خواهد رفت اما خدا به من گفت که هیچ کس نخواهد مرد پس شاد باشید هیچ کس نخواهد مرد طوفان ادامه پیدا میکنه ما میخونیم که اونها به مدت 14 روز هیچی چیزی نخوردن اونجاست که پولوس به ما نشون میده که یک رهبر عالی او در مقابل همه اون افراد دوباره بلند میشه و اونها رو ترغیب میکنه که چیزی بخورن او گفت امروز 14 روزه که در انتظار به سر برده اید و چیزی نخورده اید. بی غذا مانده پس استدعا می کنم غذایی بخورید چرا که برای زنده ماندن به آن نیازمندید. مویی از سر هیچ از شما کم نخواهد شد. پولوس از کجا این رو میدونست؟ پولوس این رو میدونست چون خدا بهش گفته بود. وقتی که حرفاش تموم شد، در حضور همه نان را گرفته، خدا رو شکر کرد و نان رو پاره کرد و خورد. پس همه قویدل گشته غذا خوردن و جمله نفوس در کشتی 276 بودیم. چون از غذا سیر شدن، گندم را به دریا ریخته کشتی را سبک کردند. داستان ادامه پیدا میکنه تا اینکه بالاخره کشتی در اون راه تیک تیک میشه ما میخونیم که سربازان میخواستند زندانی ها رو بکشن اگرچه سر دسته کسی که مسئول این کشتی بود برای اینکه میخواست پولوس رو نجات بده دستور داد که زندانی ها نباید کشته بشن بنابراین اونهایی که میتونستان شناکنان یا شناور بر روی تختها خودشون رو به سرزمینی که نزدیک اونجا بودیم رسوندن نام این جزیره جزیره مالت بود. زمانی که به جزیره وارد شدند، یک معجزه اتفاق افتاد. ما میخونیم که وقتی داشتن برای آتش هیزم جمع می‌کردند، یک افعی دست پولوس رو نیش میزنه او مار را از دستش جدا میکنه و اولش وقتی مردم دیدن که این اتفاق افتاد، فکر کردن که اون یک مجرمه و در نهایت خواهد مرد. اما بعد که پولوس مار رو از دستش جدا کرد و توی آتیش انداخت و بدنش ورم نکرد و نمرد، اونها گفتن یقینا این از خدایان هست. آیا با این مرد یعنی پولس آشنا شدید؟ این همون مردیه که رسالات رو نوشته و ما بعدن اونها رو بررسی خواهیم کرد. وقتی که بقیه کتاب اعمال رو بررسی می‌کنیم، شما هم با نویسنده نصف عهد جدید آشنا خواهید شد. به این فکر می‌کنم که آیا شما هم مثل آگریپاس هستید و میگید تو تقریبا منو متقاعد کردی. اگر وضعیتتون اینطوریه، به فردا موکول نکنید. ما نمیتونیم فردا رو تضمین کنیم. خدا میخواد شما را از قدرت گناه آزاد کنه. به ایسای مسیح خداوند ایمان بیارید و اون وقت نجات پیدا خواهید کرد. دوستان مردم امروزه هم مثل زمان پولس رسول با کنش نشون میدن. بعضی وقتی موعظه انجیل رو میشنون فکر میکنن و میگن جالبه میخوام بیشتر بشنوم. بعضیا خیلی عصبانی میشن و میخوان کسی رو که داره از کلام خدا حرف میزنه ساکت کنن. با این حال ادده کمی هم باور می کنن. همونطور که انبیا پیشگویی کرده بودن ایسا به خاطر گناهان ما مرد و در روز سه از مردگان برخاست تا ثابت کنه همون مسیح بود همون نجات ای که توسط انبیا پیشین وعده داده شده بود و هر که به اون ایمان بیاره زندگی جدیدی رو در مسیح تجربه میکنه کنه اینه که شما جز اون عده کم باشید و از اینکه که گناهانتون بخشیده میشه لذت ببرید، بدونید که خدا با محبتی بی پایان شما رو دوست داره و مکانی برای شما مهیا کرده. بله عزیزان، برنامه ما به پایان رسیده و باید از شما جدا بشیم، اما امیدواریم که باز هم در ادامه بررسی کلام مقدس خدا با ما همراه باشید.